ارز کردم با توجه به خود ظاهر آیه و شعن نزول آیه که شیعه و سنی بالاتفاق نقل کرده اند آیه در خصوص دعا و خوندن پروردگار است که شخصی با صدای بلند خدا را میخوند از پیغمبر سوال شد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 تا انی غریبن پس درش مستتر حذف ما یعلم صورت گرفته بگو به اونها تفهیم کن به درستی که من غریبون نزدیکم اجیب و دعوت الدائع از آن اجابت میکنم دعوت کسی را وقتی که مرا میخواند فلی استجیب لی پس باید مرا اجابت کنند و ایمان به من بیاورند، باشد که رشد کنن، راه بیابند و تعالی پیدا کنن. قسمت تفسیر کلی آیه با توجه مزامین تفاصیر مجملی بیان شد. جلسه قبل مطالب پایان جلسه قبل ترش رو که به اینجا رساندیم یکی از ارزشها در فرهنگ الهی به خصوص در فرهنگ تشیع مسئله دعا عنابه سوز و گداز توسل به حضرت حد است منتها اگر کسی بخواهد همه اونچه که در روایات آیات در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 و چرا گاهی دعاها به اجابت نمی رسد دعا چیست؟ جلسه غرب مقداری تقریباً بحث شد دعا خوندن است خوندن بالاتر پایینتر را نه خوندن هم همعرض هم عرض را نه خوندن پایینتر بالاتر رو که این خوندن پایینتر از بالاتر کنایه از مدد جسفن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 یک تزلل از خشوع است, خشو است، خضوع است در جنبه مختلف نظری و عملی که معلوم شد دوم عامل قرب است حدیثی رو جلسه قبل پایان جلسه سری غراعت کردم گفتم روش هفته آینده که این باشه باید بحث کنیم اگر انایت فرموده باشید به حدیث شماره ششم اصول کافی جلد دوم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 و زوابط اگر نباشه همونطوری که به اجابت نمیرسه وسیله قرب میتونه باشه در واقع دعا نیست نه مثل این که مثلا از امام صادق علیه السلام و مگر نماز تنها ان الفحشای و نیست بیان خداست این نصالاته تنها ان الفحشای و المنکر. نماز شما را از فحراب و منکر باز می‌داره خب ما بعضی ها رو می می‌بینیم نماز می‌خونم از فحراب و منکر باز داشته نمی‌شن پس چیه قضیه البته من قبل از اینکه فرمایش امام علیه السلام رو عرض کنم یه تذکر اینجا حتما لازم عرض کنم برخی میگن بعضیا که نماز می‌خونن دروغ میگن نماز می‌خونن مال مردم میخورن.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 حالا بریم امام علیه السلام با مثال توضیح داده فرمودن اگر کسی شبان روز پنج بار در یک آبی خود را شستشو بدهد در این حال چرک و آلودگی در بدنش باقی بمانه شما چی میگید میگید شستنش سطحی بوده ناقص بوده یه رفته زیر آب و انگار مثلا می‌خواد الان میگم با آب بازی کرده اومده بیرون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 گاهی در همین دنیا کما اینکه قضایای آخرت رو برای ما که بیان می‌کنم یکی از اسامی روز قیامت یومل حسرت امام علیه السلام فرمود حسرت فقط برای گناهکاران نیست یوم الحسره برای متقینم است برای متدینین و مؤمنین است حسرت میبرن ای کاش بیشتر به فکر آخرت بودن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 ادبون، گاهی خداوند ظالم رو مبتلا میکنه این باعث ادبش بشه آقا جون ظلم نکن این گوشمالیه مثل معلمی که شاگردشو نمیخواد از کلاس بیرون کنه میخواد بهش توجه بده تو هنوز امیده به رشد دارم اما جریمت میکنم گوشمالی میدم چنین چنان که تو را بیایی اما اگر از حد گذشت دیگه من ابتلام براش قرار نمیده آزمش ندید کاری با شما ندارم این البلاءل ظالمه عدبون ظلم کرده حالا ظلم درجات مختلفی داره میتونه حتی ما اگر بخوایم کار عزت آدم عبالبشر علیه السلام و سلام رو ترک اولا بدانیم بعضی میگن ترک اولام نبوده چون عالم تکلیف نبوده ولی همینقدر که ولا تقرباها ده شجرف و تکونا من از ظالمین تو دعای کمیلم زلم تو نفسی که از میتونه اون طالب است به هر حال نسبت به اون ظلم گاهی بلا پیش میاد که ادب بشه در ادب توزیداده شده که الان میرسیم بهش یکی از عوامل ادب شدن دعا کردن دعا ادب میکنه حالا عرض میخواد حاصل کنه تا در این ادب عرض کنه وللمؤمنه امتحانون گاهی ابتلا مال ظالم نیست مال مؤمنه و از ذبی ابراهیم ربه به کلمات الف لام میم ای یقولوا آمنا و لا یفتنون مؤمن مبتلا میشه ابتلای مؤمن برای اینه که امتحان بشه در این امتحانات پختهتر تر بشه قوی بشه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 من تو این امتحان تمرینی علمی فلان جها امتحان آدمیت گزرگاه قرور گزرگاه اصادت گزرگاه غیبت، گذرگاه امید به مردم خیلی مهمه در دعا اینا رو باید حالا توجه کنیم گزرگاه امید به مردم شرک افعالی و و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 بله در کتاب اصول کافی جلد اول حدیث نقل میکنه از امام صادق علیه السلام من حدیث رو امروز یادداشت کردم ولی الان توی نوشتههام نگاه میکنم بله حالا از حفظ عرض میکنم دلم میخواست از رو بگم که کم و زیاد نشه کنم امام علیه السلام در جلد اول اصول کافی حدیثی داره که روح مؤمن این روح المؤمن اشد و خوب دقیقه تو اتصال با ساد کرکدم دعا عامل اتصال توسل با ساد گفتم خم از حدیث بگم امام فرمودن مؤمن روحش از نظر اتصال به پروردگار اشد دو من شعای شمسه ال شمس شعای شمس به شمس اتصال شجوریه اگر شمس رو شما در نظر بگیرید و شعای شمس رو شعای شمس منهای شمس اصلا هیچیه میگه روح مؤمن اتصالش به پروردگار از اتصال شعا شمس به شمس بیشتر و شدیدتره همین اصول کافی جلد یک صفحه سد و نود و حدیث مفصلیه به مناسبتی نمی فرماید من سلکهو رادیو پیغمبر اسلام حدیث کسی که سلوک داشته باشه تیه طریق داشته باشه با اون طریقی که پیغمبر براش مطرح کرده وصله الله عزوجل به خداوند متصل میشه رو اشد و که هست سلوک نبوی رو به وصل وصله الله مطرح میشه در مناجات شعبانیه که همه گیه انایت دارید الهی حبلی کمال انقطاع اله تا اونجا حتی تسله ارواح اونا به از قدسک خدایا یک کاری کن کمکم کن موهبتی کن من یه جوری بشه حالا دارم نقل و معنو ارز میکنم که روح من اون چنان متصل به از قدس تو شود که معلق به اون عالم باشه. پس میشه اتصال نگوشه که میگه یک کاری بکن بشه در جلد اول کافی صفحه 198 داره حدیث نقل میکنه که اگر کسی سلوک نبوی داشت متصل میشود اگر سلوک نداشته باشه متصل نمیشه اون هم که فرمود اشد دو اتصالا من سعا شمسه پس اینا جنبندیش چی میشه؟ یعنی اگر مؤمن شدید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 حساب معنا پیدا کنه اون چنان که راجب پیغمبر میگیم دنا فتدلا تدلا قاب غوسین او ادنا تا اونجا که اقترا این غرب به حدی انگار دو حلقه هستی رو به هم پیوستی داره به هم متصل میشه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 لا تغربون بمثله شما قرب پیدا نمی کنید به از چیزی مگر مثل دعا خب یک جواب کلی اینجا دعا رو معنی آن بگیرید نمازم دعاست، روزم دعاست. هم دعاست روزه هم دعاست همه خوندن خداست همه برای خداست ولی اگر دعا به معنی خاصش رو بگیریم نماز صلات معنی خاص خودش رو داره روزه معنی خاص خودش رو داره. داره اگر اینجا معنی خاص خودش باشه چیه؟ خب دقت بفرمایید شما چقدر روایت دارید خوشبختانه در جمع ما قبلا اینا بحث شده کار دیگه ساده است قرب فرائض قرب نوافر قبلا داشتیم واجبات غربی که ایجاد میکنه به اقتضای عمل واجبی که ممکن است کسی بگه خدایا واجب کردی چشم انجام میدم خب اگه نکنم بلاخره کتک میخورم جهنم میرم نمیشه فرض بفرمایید نماز شب واجب نیست چقدرم راجب نماز شب سفارش شده ارزش ها چه بقول یک بزرگی کدایش بیامرزه از مراجع بود یه وقتی خدمتشون بودم ادهی از طلاب جوان ایشون بودن ما مهمون بودیم ما که توفیق طلبه بودن نرشتیم و هیچ روزی طلبه نبودیم حالا هم نیستیم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 بعد شروع کرد توضیح دادن که خیلی برام جالب بود فرمودی مستحبات که میگن مثلا حالا نماز صبح خوندی میخوای بشینی یه جز قرآن بخونی شما الان توی مرحله ای از درس خوندنید که ممکنه این یک ساعت سروب بخوای تو اون وقت بشینی مباحثه کنی واضعی ریشتر داشته باشه ولی چند تا از مستحباته که اینا استثناقی یکیش نماز شه بعد شروع کرد توضیح دادن ببینید نماز شب با همه‌ی ارزشی که در فرهنگ ما وارد شده چه آثار عجیبی داره به قول یه بزرگی یادم میاد میفرمود که اون نسخه‌ای که برای هر درد روحی در مسیر قرب و تکامل میشه پیچید این نسخه نماز شب که قوقا میکنه خب واجب نیست امشب حالشو ندارم امشب خسته امشب خوابم میاد امشب احتمال. چقدر زیاد ممکنه بشه ولی کسی که بالاخره متدینه امشب خستم نماز مغرب شبش رو نخونم معنا نداره خب قرب سرایز مثل قرب نوافل بر مبنای ذات عملش یا معرفت و انگیزه عمل کدومه؟ معرفت و انگیزه عمله معرفت من در انجام نماز مغرب امشب و اشای امشب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 بالا و معنا داره ایجاد میشه الهی عبید که به بابک حقیر رو که به بابک مسکین رو که به بابک زلیل و به بابک شما رو به خدا دقت کنید حالا همینجا قرب میخوایم توضیح بدید اگر این معنا واقعا تو فکر باشه نه لقلقه زبان و نه یک عادت باشه به معنی دعایی که از اعماغ فکر و جانم برمیخیزه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 روایات برسیم یه مقداری بیشتر توجه به ما بده یه روایت هم اینجا به دقت کنید مجموع البیان این مجلد اول که یک و دو با همه صفحه صد. از امام صادق علیه السلام خیلی حدیث خشنگه زیبا دارید ما یمنه احد و کم اذا دخل عليه قم من قموم دنیا چی باز میداره یکی از شما ها رو وقتی قمی از غم های دنیا به شما را پیدا میکنه یه مشکلی براتون پیدا میشه امیتوزع سم یدخل المسجد وضو بگیره وارد مسجد بشه تیرک و یه دو رکعت نمازی به جا بیاره ید اولا حفیها در اون حال خدا را بخاند دعا کنه اما سمعت الله تعالی نشنیدید که خدا داره میگه یقول وستعینو به سبر و سلات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 خلق گفتا که این چه سود گفت که این سک گاهگاهی کوی لیلی رفته است. اون غنی که ذقت کنید اون غنی که اون گرفتاری که اون که اون مشکلی که انسان رو به خود بیاره غیر از او هیچ چی مطرح نیست این غم رو باید بوسید چون این احساس رو ایجاد کنه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 من بنا کشتم امام جماعت مسجد راه را کنم یه گوشه بشنم بگم دست آسرم ور میدارید یا نه یه نمونه مثلا بعد البته مسائلی خودشون اینجا دارن که همین عوامل باعث شد که سر راه هم کسانی قرار بگیرن دست منو بگیرن چه خوندنی چه خوندنیست انضافن خوندنیست حالا اون غمی که اون مشکلی که اون ابتلای که انسان رو به این توجه وا داره غیر از خدا هیچ اما چی به پول مینازم کاری نمیتونه بکنه به قدرت هم مینازم کاری نمیتونه بکنه به دوستانم مینا دا واقعیتش اینه دیگه به دوستانم مینازم کاری نمیتونن بکنن به پارتی مینازم به چی به چی هیچی ازش کاری بر نمیاد وقت از جانم ناله بر میآورم الهی و ربی من لید غیروک خدای غیر از تو کی داره خب اگر این حالت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 لذا اتصال میشه به اوجش رسید میشه اتصال قرب میشه نسبی الان بنده با آقا نزدیکترم تا با آقا از نظر مکانی با آقا نزدیکترم تا با آقا اما وقتی دست تو دست همدیگه قرار گرفت قرب در حد اتصال شد لغا می شود. من کان یرجو لغا عرب بهی در آغوش میگیرد ماده نیست. ما لقا رو در عالم ظاهری خودمون همدیگه رو در بغل گرفتیم این روبوسی رو که با همدیگه میکنیم این اونقدر نزدیک شدیم مؤمن غربه به خدا به حدی پیدا میکنه میشه متصله به خدا متصل به خدا حدیشت رو میکنم اشد دو تسالا من شمس شمسه الاشمس تا به اینجا برسه. یکی از این اوامل دعاست اما دعای به این معنی که از اعماق جانش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 نزا اوجش میشه ابراهیم خلیل علیه السلام بعد از معصومین ما علیه السلام که وقتی جبرائیلن میاد حدیثی گفته افته قبل کردن میگه برو برو علمهو به حالی یکفیان مقالی به اون حالت برسه که اون بزرگ نقل میکرد کنار کعبه نشسته بودم داشتم نگاه به کعبه میکردم ادهی مشغول تواف بودن دیدم یک خانمی عرق ریزان اش ریزان منقلب منو شنافت اومد جلو واجوا من داشتم تواف حج واجبم و انجام میدادم حالم منقلب شد داشتم با خدای خودم نغمه عاشقانه سر میدادم میگفتم خدا دوست دارم خدا عاشقدم خدا چنینم. حالا حج من درست یا نه مایی عباراتو به زبان آوردم گفت گریه گرفت گفتم شاید از تفیل همین حالت حجت قبول باشه اون لحظه‌ای که بین خود و خدا چیزی حس نکردی حفش کردی خدا دعا خوندن خدا خوندن خدا که بین تو و خدا هیچی قرار نگیره واسطه ای چی اینا را انشاءالله بش میرسیم پس دعا یک تزلل عبودیت بندگی سرسپردگی دو وسیله قرب تا حد اتصال سه دعا دفع موانع تکاملی میکند از کجا میگم؟ اول روایت رو بخونم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 یکی دو تا روایت رو سریع می خونم فرجمه می بعد تو این وادی یه مقداری وقت داریم با هم حرف بزنیم دقت کنیم حدیث شماره یک قال رسول الله پیغمبر فرمودن از دعا اصلحه مؤمنه از امیر المؤمنین علیه السلام حدیث دوم از دعا ام مفاتیح النجاح و مقالید الصلاه و فل مناجات سبب النجا مولا فرمودند دعا کلید نجات دعا گنجینه رستگاری و فل مناجات سبب النجا توی مناجات ها تو این, این گفتگوهای دل شب با خدا اسباب نجات فراهم میشه حدیثش سوم پیغمبر الا ادلكم على صلاح ينجيكم من اعدائكم راهنماییتون بکنم دلالتتون بکنم به ی اصلایی که شما رو از دشمناتون در امان بداره حالا کم کم میخوام نزدیک بشم به اون منظور که دعا دفع موانع کند شما رو ادلکم دلالت بکنم به یک اصله ای که یونجی کن من اعدائکن شما را از اعدائتون نجات بده قالو بلا قال تدعون ربکن باللیل و النحار فإن سلاح المؤمن الدعاء شب و روز خدا رو بخونید تصفیه خدا بگید خدا را بخونید که سلاح مؤمن دعاید امیر المؤمنین حدیث شماره چهار هر هرسل مؤمن دعا سپر مؤمنه سپر از عملاتی که میخواد به شما بشه خطراتی که میخواد به شما وارد بشه سپر دست میکنه دیگه حدیث شماره پنج از آقا امام رضا علیه و السلام و سلام فرمودن که امام رضا فرمودن پیغمبر به اصحابشون فرمودن علیکم به سلاح الانبیا شما رو شماره رو باز شماره سفارش می کنم اسلحه انبیا رو از دست ندید. ثقیله و ما صلاح الانبیا گفته شد یا رسول الله اسلحه انبیا چیه قال دعا، داس تو دعای کومیلا میخونید ارحمن رأس و مال هلب و کا و صلاح و حل رأس و مال رجاب و صلاح و حل بوکا بوکا هم به عنوان اسلحه در اینجا معرفی شده حدیث شماره ششم از امام صادق علیه السلام ان دعا انفضم نفس خنان دعا از نیزه نافستره نیزه رو تو جنگ ها برای دفع دشمن به کار میبرن نیزه باید محکم باشه سرشتیز باشه بزنی دشمن رو بیازاره از شما دفع کنه امام فرمودن دعا از نیزه برای دفع دشمن نافستره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 اولا من اکتصاب الحسنات دوری گذیدن از بدیا که مانع خونسا کننده هست اولویت داره از اکتساب خوبی ها اولی جان دفع شرموش کن بعد از اون در جمع گندم کش کن این مزرعه رو بنده میخوام در سطح مزرعه گندم پرورش بدم بذر اصلاح شده دارم میپاشم اینجا این عامل مؤثر آب شیرین گوارای سالن توی مزرعه میریزم. عامل مؤثّر کود و مواد تغذیه‌ای زمین رو به مزرعه اضافه می‌کنم عامل مؤثّر ولی زمین رو خوب شخم نکردم چون بکاری در زمین اصل کار تا بروید هر یکی را صد هزار زمین شوره سنبل بر نیاورد در او تخم عمل زای مگردان. من زمین الان شفته سنگلاخ سنگریزه داره علف حرز داره چنین هی این بذر اصلاح شده آب چی آقا مانع داره رو کنار بزن مانع چی الفقرزا رو بکندین دور این سنگا رو جمع کن دور کن این درختایی که سب شده اومده بالا شاخه ها جلو نور آفتابو میگیرن اینا رو هرس کن مانع رو کنار بزن بعد آب بده بعد کود بده بعد بذر رو در اینجا قرار بده ما در مسیر شیر الله و قرب به نماز ما رو میخواد اوج بده روزه میخواد ما رو اوج بده توجه به عزت حق میخواد ما رو اوج بده اما یه چیزایی این بال ما را مثل زنجیری به هم بسته اینا رو قیچی کن هواپیما نیروی محرکه برای پرواز داره موتور هواپیما به قدری قویه الان وقتی کار میفته میتونه این هواپیما را با سرنشینان بلند کنه تو آسمان ولی با یک عوامل خونسا کننده این هواپیما رو به گونه بستین به زمین هرچی این موتور داره نیرو صرف میکنه این بشتگی به نگهداری داره خونساک میکنه ما را یک سلسله عوامل نگه میداره تو عالم خاک نمیداره سر از عالم پاک در بیاریم اگر چه برخی عوامل گرایش به سوی عالم پاک رو در ما ایجاد میکنه ولی مانع خاکی نمیگذارد ما رو تو عالم خاک نگه میداره یکی از این عوامل دعاست لذا اصلعه به این معنیه یعنی دعا میاد شما را به عالم معنا به گونه ای مرتبط میکند یک در عالم معنا قدرت معنا رو زیاد میکنه دو سلطه معنا رو بر ملک و مادی ایجاد میکنه هر دو حالا اجازه بدید تو هر دو یک اشاره کنم گرچه بحث خیلی دامنه دار و میتونه ریشه ی عمیق باشه نمیخوام وارد شم اگه وارد بشم یک دریایی است تو روایات ما و توی آیات ما ولی اشاره میکنم خودتون انایت بفرمایید یک آقا حقایق عالم فقط مادیش حالا یه مثال ساده میزنم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 میگه کسلم غذا تو چرا خوب خوردم ورزشم خوب کردم خوابم هم خوب رفتم اما همینی که ناخودآگاه میگیم روح ما خسته است الان روانشناسی شناسی روی این کار میکنه روانپزشکی روی این کار میکنه فلسفه در بود انسانشناسی روی این کار میکنه علم نفس روی این داره کار میکنه میگه چیش طرف الان بحثی که در بیماری های افسردگی دارن تو دنیا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 همه نوشتن زینم کبرا علیها جسم له ورده شده علامان و وقتی برگشتن به مدینه علامان و شوهرش او رو این جسم اقتضای عالم ملکه ولی روح به است حتی تو کاخ ابن زیادم قرار میگیره میخواد سرزنشش کنه میگه والله ما رأی تو الله جمیلا همش عالی و زیبا دیدم شما از نظر همین ظاهری تو دنیای علمی خودمون یه جراح هشتاد ساله تجربه علمیش با یه جراح سی ساله قابل مقایسه است خیلی قدید ساله چل ساله شما راهنمایی کن من انجام بدم تجربه علم آثار علمی او از این چلساله خیلی بیشتر نشات جسمی چلساله از او بیشتره اگر بنابودین علم مال جسم بود و جنبه ما فوق جسم دخالت نداشت همونطوری که بدن فرسوده شده علمش علمشان فرسوده بشه این چیه که فرق میکنه؟ مالی یه بعد دیگریه دعا ارتباط روح با خداست دعا در عالم روحی وقتی به خدا مرتبط شد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 میگن حسد قبل از این که محسود رو از بین ببره حسد رو از بین میبره حرف خیلی قشرنگی حدیثه حسد قبل از اون که محسود رو از بین ببره حاسد رو حسود رو از بین میبره چرا؟ برای اینکه خودی این حالتهای حسادتی که تو دنیای روح حسود داره ایجاد میشه داره بیچارش میکنه نظر روحیه دیگه ولی وقتی روح بزرگه روح قبیی دعاست که روح رو متصل به با بالا میکنه وقتی متصل به اون عالم بالا کرد این انسان از نظر قدرت روحی چه روحیه ای پیدا میکنه شیشه دلان راست بین سنگ هوادث سخر مهابا سیل و سنگ ندارد لذا دعا میگه خودا تو برگزاره به خدا کن برگزاره به خدا کردی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 خب تا زمانی خدا چی پول دارم قدرت دارم امکانات دارم توان دارم پس هنوز خدا مطرح نیست لذا اگر دعاست باید با توحید افعالی تو هم باشه توحید افعالی چیه؟ فاعل علی اطلاق اوست اگر نخواد سنگی از جاش تکون نمی اینو باید بکنم این باید اینو در مقام اعتقاد توحیدیمون نه به معنی جبره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 تو این وادی که میندازم وادی وادیش که هر جا می‌خوای بری برو اون لحظه ای که احساس کردی مولای مولا انت دلیل و انال متحیر و حلیر هم المتحیر الا الدلیل دیگه هیچ فقط تو انتال غنی و انال ضعیف و حلیر هم الضعیف الا الغوی انتا الغالب و انال مقلوب و حل یرحم المقلوب و الا الغالب اون وقت اگه خواستو نمازشم این آیه رو بخونه با تمام اعتقاد باید بخونه رب اینی مقلوب سنتسر و انتا و رب اینی محسنیت زور و این از اعماق وجود وقتی برخیزه وقت این عالم میشه عالم سیطره معنوی عالم معنا اون احاطه آلم هست حتی تاثیرش در عالم ملک گاهی نشون میده یه بنده خدایی بود شاید گفته باشم چون من دیدم همون فردو دیدم هم عکسش رو دیدم این بنده خدمتی بزرگی بودیم خداییش بیا موضوعم فوت کرد این آقایی که همراه این بیمار رفته بود آلمانو برگشته بود از شاگردای اون عالم ربانی بود برگشت منقلب بود اتفاقا ما هم در خدمت اون عالم ربانی بودیم خدایش بیامرزه هر دوتا از دنیا رفتن اما اون آقا هنوز حیات داره آنیکی این قضیه برست اتفاق افتاده گفت که جوانی تو فامیل ما قضیه مالش ها سی سال قبل گفت که تو فامیل ما یه جوانی در اثر حادثه دو دوتا چشمش نابیناش ملک این بردن توی همه ایران و غیره و غیره. عکسو من دیدن، دو تا عصبی که میاد به چیش قرض شده. گفتن هیچ کاری نمیشه کرد، بردن آلمان. حالا از نظر علم تبچیه من نمیدونم، آقایون بهتر بلدن، بهتر که چی بلدن من که بلد نیستم. گفتن که از نظر علم در شرایط فعلی به گونیش ما کار نمیتونیم بکنیم. این باید همجوری نابینا بمونه. خدا شاهد الان یادم اومد، یه دفعه شدم که در آستانه ولادت امام رضا این قضیا هم در رابطه با امام رضاست. اینو به حال نیک میگیرم. امیدوارم به آقای آقا امروزهای امشب همگی برخوردار بشیم. گفت تو آلمان به ما گفتند که آجون چشم این جوونم دانشجو دو تا چشم اینجا قفل شده عثوا نابینا جون کاری فعلا علم نمیتونه بکنه. بعد بگید که خب تصمیم گرفتیم آروم آروم جوون رو آماده کنیم آقا جون شما بناس نابینا بمونیم اومدیم خونه یکی از ایرانی‌ها که مهمون بودیم آروم آروم آرومش گفتید جوان زد زیر گریه متوصله به مامرزه شد چون ایران بود و زیارت مامرزه زیاد میرفت ارادتی به مامرزه علیه السلام داشت گفت خیلی منقلب شد و از اونجا توصله به مامرزه و گریه و تو گریه هاش اینا به مامرزه حفظ کرد که یعنی رسول الله من ظرفیت ندارم اینجوری بمانم قبول میکنم من ظرف دارم نمیتونم مذهبی هم خودکشی هم نمیتونم بکنم ولی از شما خواهش کنم یا شفای منو بدید یا از خداتون بخواید منو ببر. من نمیتونم بمونم. دیگه یکی از این رو به من بدید. گفت قدری ما رو منقلق کرد، همه با گریه خوابیدی. این آقا که من از خودش شنیدم در حضور عالم ربانی گفت یه وقتی بود که این جوون از خواب بیدار شده، منو از خواب بیدار کرد. پاشو پاشو من پا شدم. آقا من خوابم یا بیدارم؟ که من از خواب بیدار کردی یعنی چی؟ باقی من دارم میبینم باورم نمیشه که بیدارم یا خوابم مخواب میبینم خواب بینم یا بیدارم منم منغلب شدم چرا آقا روشن کردم این چیه؟ بیدم بله خواب جمعیت رو بیدار کردیم و تا صبح با امام رضا بودیم اون شب تو آلمان همه منغلب. سو بردیم پیش پزشک رو معاینه کرد می‌بینه عکس انداختن این عکس رو عکس کردم بنده دیدم بغل این دو تا عصب ولحضرت بیچیم شما نمی‌دونم اداره من نمی‌فهمم دو تا عصب دیگه کشیده شده کشیده شده و شده اون یکی که سیطره بر عالم داره مگه کاری براش گفت پزشک تا نگاه کرد این جالب بود گفت خیلی عادی پزشک گفت دیشب کلیسا رفتیم. میدونن آخو گفتیم برای کلیسا ما یه جای دیگه هست گفت خدا خواسته گاهی دعا شما رو تو عالم معنا نگه میدونه گاهی دعا سیطره معنا بر ملک نشون میده میگه عالم ملک عالم ماده نسبت به عالم معنا چیه دعا اصله هست همون طوری که در عالم بالاتر از عالم معنا عوامل تعالی در عالم معنا خیلی بالاتره مانع عالم معنا خیلی خطرناکتره یعنی کسانی که میخوان سیر معنوی پیدا کنند، وقتی به مراحل بالاتر از عالم معنا میرسن خطر اونجا براشون بیشتره شیطان اونجا بیشتر زون میکنه دعا برای اونجا اصل است که اون موانع رو کنار بزنه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 به اندازه‌ای که مغرب بودن متصل شدند. به اندازه‌ای که متصل شدند چی شد؟ آثاری که در اثر اتصال دارند نشون میده. انایات بکنید مثله وا یه وقت بر من خورده نگیرید مثال عرض می‌کنم. اینا هیچ کدوم در عالم مثال ماده اینجوری لیشکم مثل ایشی برای تقریب ذهن ارزم می‌کنم سریع آتشه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 به اندازه ای که اتصال پیدا می این که شما می‌گید علی علی الله، امام ولی الله عین الله،, الله، مشیط الله یعنی ش... در مثل مناقشه نیست وگر من بگم یعنی در اثر نزدیکی با اون منبع نور <تصح> الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوری کمشگاه شده محل اون نور لذا آثاری که در اثرون اتصال داره معصومه مادون معصومه این هفته معصوم داریم امام رضا غیر معصوم ازت معصومه داریم علا ظاهر غیر معصوم از هر دو اون اتصال خلیفت اللهی امام رزاست که همینجور اناویاتش خیزان داره و اونم حضرت معصومه سلام الله علیه ها که امام رضا به او فرموده تو معصومه ای تو پاکیزه‌ای تو چنین و چنانی عنایتی که حضرت معصومه سلام الله ها میکنه در اثر اون قربی که دارن. لذا همین همینجا من فقط عرض ادبی به این برادر و خواهر بکنم همه بحث بمونه انشاءالله برای هفته بعد ببینید هر چه قرب بیشتر شد عرض کردم دقت بکنید هر چه قرب بیشتر شد اینکه نزدیک شده قرب پیدا کرده به اقتضای درجه قرب و اتصال آثاری که از اون مبدع و منشئی که به او قرب پیدا کرده پیدا میکنه شما آثار حضرت معصومه سلام الله ها رو به جهت اینکه دختر امام است خب امامان فرزندان دیگری هم داشت حضرت نو هم فرزند داشت جعفر کذاب هم فرزند امامه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 امیر که که نفرموده علی اول امام سید الاوسیا نفرمود اون رکن منه به اندازه قربش این آثار رو داره حالا مقایسه کنید با حضرت زهرا سلام الله علیه امم الا امتال نجباس حجتالله علا حججه حضرت زحرا سلام الله چند روز قبل ولادت حضرت مرسومه سلام الله علیه بود تلویزیون هم نشون میداد شاید دیدید. از نزدیک همونهایی که قوم مشرف بودن دیده باشن. حتی دختر بچه های مدارس هر کدوم یه شاخ گل به دست. دسته دسته وارد حرم حضرت محسومه می ای شاخ گل رو میداختن رو زریع حضرت محسومه. عرض ادب میکردن. نوعی مثلا خیر مقدم که به شهر ما وارد شدید. به شهر ما خوش ما داریم از شما مثلا عرض.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 که به یه معنی میشه گفت که این ذریع رو میخوان تو گل دفت میکنن یعنی آقا جون دوستتون داریم عرض عدف میکنیم از ما کاری بر نمیاد اما نمیدونم با زهرا سلام الله علیه ها تو شهرش تو خانهش تو خانه پیغمبر تو مدینه چه کار کردند که فقط با اشاره بگم ایام ایده علی جون شبانه مرا غز کن شبانه مرا کفن کن شبانه مرا دفت کن اهدی رو مطلع نکن الانم شما بعد از قرنها به تمام اماکن مذهبی مکه و مدینه سر میزنید. یک دختر پیغمبر باقی گذاشت همه بعد از پیغمبر و خود پیغمبر به این دختر مینازیدند و به او افتخار می‌کردند اما اثری از او ظاهر پیدا و آشکار نیست خدایا چرا به جان فاطمه معصومه و ترا به مقام علی ابن موسی رضا قسمت میدهیم، اتصال و ارتباط و معرفت بین ما و خودت را روزافزون بگردان